ساغیر باده از این دست به جام اندازد عارفان را همه در شرب مدام اندازد ور چنین زیر خم زلف نهت دانه خال ای بس مرغ خرد را که به بدام اندازد ای خوشا دولت آن مست که در پای حریف سر و دستار نداند که کدام اندازد زاهد خام که انکار و جام کند پخته گردد چون نظر بر می خام اندازد روز در کسب هنر کوش که می خوردن روز دل چون آینه در زنگ زلام اندازد آن زمان وقت می صبح فروغ است که شب گرد خرگاه افق پرده شام اندازد باده با محتسب شهر ننوشی زنهار، بخورد بادعت و سنگ به جام اندازد، حافظا سرز کله خورشید خرشید برار، بختتر قرعه بدان ماه تمام اندازد.